امیدوارم حالتون خوب باشه. داستانی که از کتاب قصه ها و افسانه های ایوارشاه میخوام تقدیمتون کنم. اسمش هست دختر چوپون. در یکی از دهات دور افتاده دختر چوپونی بود که هر روز گوسفندهاش رو از طلوع تا غروب آفتاب توی دشت میچروند و تمام روز رو برای اونها آواز میخوند و میرقصید و با یکی یکیشون حرف میزد. گوسفندها آشقه دختر بودند و از این عشق شاد. دخترشو بود هر روز صبح پس از بردن گوسفندها ها به دشت میرفت سر خاک پدر و مادرش دست و گلی تازه روی قبرشون میذاشت و شم روشن میکرد و با اونها و با خدا درد و دل میکرد. اون تنها فرزند خانواده بود و پس از مرگ پدرش وظیفه چوپونی رو به عهده گرفته بود. شبها قبل از خواب به ماه و ستاره های آسمون نگاه میکرد تا کم کم خوابش ببره. روزی از روزها داشت توی دشت گوسفندها ها رو میچرون. مرد جوونی جلوش ظاهر شد. دختر حیرت زده پرسید تو کی هستی؟ مرد جوان گفت من یکی از ستاره های آسمونم. دختر گفت اینجا چه کار میکنی و چی میخوای؟ مرد جوان گفت سال هاست که از دور تو رو میبینم و عاشقت شدم. شبها گاهی به من نگاه میکردی و من خوشحال میشدم. دختر گفت چرا اومدی؟ مرد جوان گفت از فرشتی آسمون خواهش کردم منو تبدیل به آدم کنی تا تو رو از نزدیک ببینم. حالا که دیدمت بیشتر عاشقت شدم. دختر گفت من تو رو نمیشناسم و نمیدونم تو کی هستی. داستانت رو هم باور نمی کنم. این داستان بچه که تعریف می کنی سر پا است. بهتره برگردی و منو تنها بذاری. مرد جوان گفت من دروغ نمیگم ولی اگه تو بخوای میمونم و به تو کمک میکنم و تو توی این فاصله منو کم کم میشناسی. به من فرصت بده من دوست دارم. خیلی تلاش کردم که اینجا باشم. دختر چپون که از مرد جوان خوشش اومده بود و دنبال راه حلی میگشت گفت من نمیدونم تو راست میگی یا دروغ. امتحانت میکنم. میتونی شروع کنی به گوسفندها غذا بدی و پشمای اونا رو بچینی و براشون علف یاری و کارهای دیگه؟ مرد جوان گفت حاضرم و بلا فاصله شروع میکنم. دختر گفت راستی حقوق در ماه یک گوسفنده که میتونی اون رو بفروشی. مرد جوانم گفت چشم. مرد جوان شروع کرد به کار کردن. بدون استراحت کار میکرد الف رو با داسته رو میکرد و یه هم باشد و سگ گله رو برای بهتر نگهبانی کردن آموزش میدار. چند ماه گذشت. دختر چوپون کم کم آشق مرد جوان شد. مرد جوان پیشنهاد ازدواج داد. دختر چوپون با شادی قبول کرد. اهالی ده جمع شدند و هفت روز و هفت شب جشن گرفتند. پس از رفتن مهمون ها فرشته از آسمون ظاهر شد. بعد از تبریک پیروزی عشق به دختر جوان گفت شوهرت راستی ستاره است و تو اول باور نکردی. اون به خاطر عشق تبدیل به آدم شد. مادرت هم ستاره بود. به عشق پدرت اومد روی زمین و با اون ازدواج کرد و مون. ولی چون ستاره توی زمین میمیره، پدرت رو تبدیل به نور کرد و با هم به آسمون پرواز کردن. تو میتونی با شوهرت به آسمون برگردی و نزدیک مادر و پدرت باشی. دختر گفت نمیتونم گوسفندها تنها بذارم گوسفندها خانواده منن فرشته گفت چون روح و عشقت پاکه گوسفندها رو هم میتونی همراه خودت ببری زن و شوهر با شادی هم دیگر رو در آغوش کشیدند و از فرشته آسمون تشکر کردند یه دفعه هر دو با گوسفندها تبدیل به نور شدند و با صورت تمام رفتند به آسمون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 همه و همه و همه در کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای های افسانهای صوتی سانین مهران دوستی،